بسم الله الرحمن الرحیم باب الافعال رسیدیم به باب افعال کتاب اجورومیه الافعالو ثلاثه الافعالو مبتدا ثلاثه خبر ماضن این ماضن چرا کسر گرفته ایراب این تقدیریه ایراب اشتیه؟ در اسبوده ماضیون مثل دائیون که میشه دائن جاء دائن, جا دائن و مضارعون پس ماضن مرفوع اینجا بدل از خلاستون هست و مضارعون و امرون نحو ضرب و یضرب و اضرب پس مازی و مزاره آمر و مثال زد ضربا مازی هست یا ضربو مزاره هست یا امر هست. پس فعل مزاره بر چند نوع تقسیم می شود مازی قبلا ها گفتیم مازی اونی هست که دلالت بر حصول چیزی بکند قبل از تکلم قبل از اون لحظه که تو داری حرف می زنی. مانند نصره وجد قام جلسه و مزارع اونی هست که دلالت بر حصول چیزی در زمان سخن گفتن کند یا بعد از تکلم یعنی حال یا آینده مانند یا یا انصرو، یا یا و سوم امر هست امر اونی هست که دلالت بر طلب کند دلالت بر طلب حاصل شدن چیزی کند بعد از زمان تکلم موقعی که میگیم اذرب، یعنی بعد از این گفتنه بزن پس این تعریف بسیار دقیقی بود که استاد محمد محیددین عبدالحمید رحمه والله از علمای ازهر هست این در شرح آدو رومی آورده اند اما فلماضی اللحاظ اعرابی چون نه هدفش چی هست بحث اعراب هست میگه فلماضی مفتوح الاخری ابدا میگه ماضی میشه آخرش چه داره مفتوحه فتحه داره بر فتح هست ماضی مبدی بر چی است؟ حالا این فتحه یا ظاهریست یا تقدیری در ظاهری ظاهریست در دعا و در رما چه هست فتحه تقدیریه میگیم سعاب مبنی بر فتحه فتحه اینجا مقدر هست فتحه اینجا چه هست میگم آزی مفتول آخر هست همیشه ولی این فتح یا ظاهریست یا تقدیری خب در سیغه های مثل زربو در سیغه های مثل زربو اینجا ما چی میگیم میگیم زربو. با که آخرین حرفش زمه داره میگیم آیا مبنی بر فتح یا مبنی بر زمه استاد عبدالحمید که از نحات محققین خوبه میگه اینجا فتح مقدر هست چون زمیر واب حرکت مناسبی که به ما قبلش داده میشه زمه هست حرکت مناسبی که بهش داده بشه چی هست؟ زمه هست لذا مبنی بر فتح هست منطقه فتح مقدر هست و نمیتونه ظاهر بشه به خاطر اینکه که زمه اومده محلو اشغال کرده مناسبت داره با و البته بعضی از نوحات گفتن که زربو مبنی بر زمه هست ولی فعل ماضی مبنی بر فتح است حالا چه ظاهری و چه تقدیری و در سیگاه های کتبتو، کتبتا، کتبتو ما، کتبتم، کتبتی، کتبتو ما، کتبتو نا باز هم فتحه چه هست؟ و الامر وَالْأَمْرُ مَجْزُومٌ عَبَدًا عمر همیشه چه هست؟ مجزوم هست مبنی بر علامت جازم هست یعنی فعل مز... عمر از چه درست میشه؟ از فل مزاره میشه مزاره موقعی که مجزون بشه مزار موقعی که مجزون بشه چه علامتی میگیره؟ اگر اون سیغایی اون که به چیزی نسخی و موتلل آخر نباشه با سکون اگر موتلل آخر باشن اون سیغایی که آخرشون چیزی نسخی ده باشه با حصف حرف الله و سیغای خمسه با حصف نو میگه فعل امر مبنی بر علامت جزم هست یعنی چی؟ یعنی در ازرب مبنی بر سکون هست در قدعو از تدعو درست میشه مبنی بر حصف حرف الله هست. در ارمی با کسره ارمی ارمی نه یا حصف میشه دیگه در عمر. ارمی مبنی بر حصف حرف الله و در ازربا مبنی بر حذف نون پس میگه و الامر مجزومون ابدا امر میشه مجزوم هست مبدی برهمون علامت حذف در مزاره و المضاره ما کانه في اوله احدى الزوائد الاربع مضاره اونی هست که در اول یکی از حرفای الزوائد چارگانه اومده باشد اللتی یجمعوها قولو چار حرفی که در این کلمه جمع شده عند ت حمزه در انصرو مون در متکلم معلقه ننصرو یا در غایب ها ینصرو، ینصرانی، ینصرونه، نه جمع نست و تا هم در تنصرو الى آخر که سیغه های بسیار واضح هستند و نیاز به تکرار نیست پس فعل مزارعونی هست که در اولش یکی از این چار حرف زوائد جمع شده باشد البته مهم هست که و هو ابدا فیلن فعلاً این بحث ما اعراب هست بحث طولانی نمی کنیم خلاصه میره جلو. میگه همیشه فیل مزاره چه هست مرفوح هست البته جز دو سیغه یه جمع موننس یزربنه و تزربنه یعن سرنه و تنسرنه اونا مبنی هستند. بقیه سیغه ها همیشه مرفو هست میگه فعل مزاره همیشه چه هست؟ اونا مبنی هستند. یعنی و تنسرنه چی هستند مبنی هستند. اون سیغه هاش که مورم هستند میگه همیشه مرفو هست همیشه چه هست؟ حتی اید خلعه ناسب او جازم تا اینکه که به اون ناسی یا جازی وارد بشه از فعل بزاره مگر این که ناسب برش وارد بشه اون موقع منصوب میشه یا یعنی اینکه که جازمی برش وارد بشه که اون موقع چی میشه مجزوم میشه از اون جایی که گفت ناسب و جازم وارد بشه در درس بعدی نواصب و جوازم رو توضیح میده فن نواصب و عشر تون نواسب چند تا هستن؟ در حالی که رفعی هر کجا شما دیدید فعل مظاهره ناسب و جازم نداشت میگیم مرفوعه چرا اگر شما رو گفته خود چرا مرفوع هست بگیم چون نه ناسب اومده ما نه همینی که خالی از ناسب و جازمه همین مرفوعه ناسب بیاد منصوبه جازم بیاد چیه؟ واسه حالت حالت چارمی دیگه در فعل مظاهره وجود ندارد فا ناسب و عشرتون ناس دهندگان دهتا هستن و هی ان یک ان و لن و اذان، و که و لام و که یعنی لام که بمانند که هست مانیش و لام و توضیحش خواهیم داد و حتی و حتی و الجواب و جوابی که بوسیله فا واغ و او باشد حالا این نواسیبی که خوندیم دهتا اینا به سه قسم تقسیم می دقت داشته باشید این نواسیبی که اینجا خوندیم در کتب دیگر هم خونده اید مثلا در قطر و ندا و در هدایه و در جاهای دیگه میان آن سه قسم هستن قسمی که خودشون منصوب می کنند قسمی که ان بعد از اونا مقدره این نوع خودش دوباره به دو نوع تقسیم شه. بعضی از اینا واجبه که ان مقدر باشه در بعضی یعنی این ها که ان مقدر باشه نصداشون سه قسم اون قسمی که خودشون فعل مزاره رو منصوب میکن اون قسمی که ان بعد از اونا مقدره در واقع همون انه که منصوب میکنه به خاطر این بعضی از کتاب میگن منصوبات چار تا هستن ان لن که ازن بقیه میگن خودشون نیستن که منصوب میکنن همین انه که مقدره همین انه که چه هست؟ مقدره قسم اون قسمی که خودشون منصوب میکنن فعل مزاره چهار تستن و لنو اذنو که هستن ان, ان مس حرف مصدر نصب و استقبال هست مثال های قرآنی آورده است استاد عبدالحمید میگه اطمعو ان یغفره لی ان یغفره میگیم یغفره فعل مزاره منصوب چرا؟ چون ان اومده علامت نصب میگیم فتحه لن لن حرف نافی هست نصب هست و به معنای استقبال هست حرف نافی و نصب خب معلوم هست است و استقبال هست معنیم لن نؤمن لک لن نؤمنه میگیم نؤمنه فعل مزاره منصوب به وسیله لن عامل لن هست علامت نصف هم فتحه هست ایزن حرف جواب و جزا و نصف هست یعنی منصوب میکنه ولی حرف جواب و جزا هست خب ولی ایزن با سه شرط در تمام کتب این سه شرط را آورده هست فیلو منصوب میکنه در غیر این صورت منصوب نمیکنه شرط اولش اینه که در ابتدای جمله جواب بیاید جمله جواب یعنی چی شما میگی مساجار اس اجتهد فی دروسی در درس هم تلاش میکنم یکی دیگر بهت میگه اذا تنجح اذا در این صورت تو پیروز میشی موفق میشی خب این در جواب جمله قبلی اومد فرد جوابو چه ساز؟ ولی در ابتداش اومد اذن تنجح در صدر اومد در جومت پس شرط اول اینه که در صدر جمله جواب بیاید ساجتهد دروسی اذن تنجح در جواب اومد در جومت در صدرش اومد این یک شرط شرط دوم این هست که مضارعی که بعد از اذن میآید به معنای استقبال باشه به معنی حال نباشه به معنی چه باشه استقبال باشه مانند همین مثال و شرط سومش این هست که بین اذن و بین مزاره فاصله نباشد جز قسم ندا یا لایم امناویه یعنی اگر بین ازن و بین فعل قسمی اومده بود ندا اومده بود یا لای او بود مشکلی نیست منصوب میکنه ولی جز اینا کلمه ای بین ازن و بین فعل مزاره اومده بود اون موقع منصوب نمیکنه مثال آورده برای قسم همون مثال ازن یا محمد تنجح تنجح بج تنجها منصوب به وسیله اذن درست بین اذن و تنجها فاصله است با یا محمد و این فاصل نداه است این فاصل چه است نداه است یا اذن لا یخيب سعيک اینجا لا نفیه است اذن والله لا یذهب عملك ضیعا اینا بودند شرط های اذن این شرط ها رو در ذهن داشته باشیم ازن در جمله جواب در صدر اومده باشد در ابتدا اومده باشد نه در وسط و آخرش فعل مزاره دلالت بر استقبال بکند و بین ازن و فعل مزارب فاصله نباشد جز با ندا و قسم و لای نافیه که هم حرف مصدر و نصب هست لِکَی لَا تَعصُب کَی دولت. این اینا 4 حرفی بودن که خودشون فعل مضارع رو منصوب میکردن. اما قسم دوم اونهایی هستند که فعل مضارع رو به وسیله ان انی که مقدر هست منصوب میکنند و این ان میتونه ظاهر بشه و میتونه مقدر بشه در یک جا زمانی که بعد از لام تعلیل باشه لیعذب الله المنافقین والمنافقات جا از ایدن لیدروسه ما میتونیم بگیم جا از ایدن لیدروسه میتونیم بگیم جا از ایدن لیان این لام تعلیل هست پس در اینجا جائز هست که ان مقدر بشه و جائز هست که چی بشه؟ ظاهر هست و قسم سه جاهایی هست که ان مقدر میشه ولی دیگه نمیشه ظاهرش کرد یکی از اون جاها لام جهود هست لام جهود اون لامی رو میگن که ما قبلش ماکانه و لم یکون باشد. بشد ماکان الله لیذر المؤمنین لیذره یذره چرا منصوبه؟ با ان مقدره ولی این انو نمیشه ظاهر کرد چرا؟ چون؟ این لام لام جهوده از کجا بدونیم لام جهوده؟ از ماکانه ای که اومده ماکان الله لیذره پس لام جهود داریم و لام تعالیف لام جهود اونیه که ما قبله ماکان اومده؟ و لم یکن لم یکن الله لیغفره لهم جای دیگه ای که این انپنهان میشه بعد از حتی هست حتی یرجع ایلینا موسا و دو جای دیگر که ان مقدم میشه بعد از فای سببیه و ضعب معیه هست البته به چه شرط؟ به این شرط که وفا در جواب نفی یا طلب اومده باشند لا یقضا علهم فیموتو, فیموتو منصوبه؟ چرا؟ چون ان بعد از فا مقدره و این فیموتو در جواب لا یقضا هست که نفی هست در جواب طلب هم اگر بیاد طلب منظور از طلب امر دعا نه استفام عرض تحضید تمنا و رجا اینا رو میگند طلب اگر در جواب طلب بیاد اون موقع مجموع میشه مثالی میزنیم از مثالایی خیلی ساده ادرست فتنجحه ادرست چرا اینجا تنجه منصوبه چون ان بعد از فا مقدره شرط اینجا هست یا نیست؟ بله هست فتنجه در جواب چیه؟ در جواب طلب که امره لا تسرق فتنجه مثلا بصلا ساده مثال برزنیم لا تسرق فتنجه در جواب چی اومد؟ طلب چون طلب امره نهی استفهام و اون چیزهایی که ذکر شدن خب مثاله های خود کتاب آورده مثاله رو شارح آورده اصطاد عبد الحمید ذاکر فتنجح این فای سببی هست ذاکر و تنجح دوینید ذاکر فتنجح ذاکر و تنجح این واغ یا فا بعدشون ان مقدر هست فا سببی هست واغ و در جواب تلب اومده ذاکر فعل امره طلب هست برای امره این بود برای امر برای تهدید مثلا آورده است حلا ادیت واجبک فیشکرک فیشکرک ابوک اینا دیگه ساده هستن رد میشیم تمنا و رجاع و تحضید و استفاد و عرز اینا رو بعدن خودتون مرور کنید یا مثلا تمنا این شعر مشهور رو بیاریم الا لیت الشباب يعود و یومن فا فا اخبراهو فا اخبراه چرا با این صوبه فعل مظالم؟ روسیله بعد اصفا و این فا اخبره در جواب چه اومده؟ در جواب تمناه اومده و تمناه از طلب هست شملات انشایی رو شما نخوندید در نحو میر خوندید همون انشایی طلب بس آلاء تَشَآ آلاء تَشَبَابِ يَوْدِ يُمَنْ بعد صفاء سببیه مقدر هست و به این خاطر است که منصوب هست. اما جوازه 18. و عشر. که مزاره رو مجزوم میکنن چند تا هستند؟ يجده حسن وهي إبرة ناس لم لما ألم ألم لما نام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا نهي والدعاء إن ومن وما وما مهما إذا أيو ومتأ وأين وأيانا وعنا وحيث ما وكيف ما وإذا في الشعر خاصة وإذاك فقدر الشعر خوب هم ب شأن لا تقصي ميشنت که فقط یک فل رو مجموع میکنند و اونایی که دو فل رو تقسیم میکنند اونایی که دو فل رو موم میکنند کنند که دو فل رو مجموعوم میکنه خودشون بعضی ها حرفند بعضی یا اسمند بعضی ها در این که اسماصلن یا حرف لحوی ها با همیه اختلاف دارن ما زیاد توی این لو بحث نمیریم چون شما جرومیه رو اون فقط میخوایم بگیم که اینها فل مزاره رو بعض یک فل رو موم میکنن و بعضی دیگر چند فل رو؟ دو شش تا اولی یعنی لم لما علم, علم ما، لام امر و دعا لا نح اینا. اینا شدن تا. اینها فقط یک فیل رو مجزون میکنند مانند لم یانسور علی جن اما بقیه دو تا فیل رو مجزون میکنند مانند انتنسور انسور اگه تو یاری کنی من هم یاری میکنم انتنسور الله یانسور کن انتنسور الله ال ان حرف شرط تنصروا فعل شرط مجزوم علامة جزو حسنون يعني سركم جواب وجزاء جزايا شرط مجزوم علامة جزو سکون نعم كيف حفظت شدك پنش يعني لام امر و يك يك لام هست ببيني ايجا دائقات كنيت لام امر اوني هست كفعل امر درست مكنات اگر اگر این رو شما به کوچکتر از خود بگید بهش میگن لامه امر به بزرگتر از خودت به اونی که انلاحظه قدرت به تبالتره به دیگه نمیگن لامه امر بهش میگن لامه دعا بهش میگن لامه دعا خب بیایید مثلا اومده علينا ربك قضاوت کند برما پروردگارک دیگه اینجا بهش میگن لامه دعا چون خطاب الله متعال هست اما فلیقل خیرن اولی اسموت این لامه این لامه چه هست لامه امر هست خب لم لما لم لامه امر بیایید روی قسمت اول لم حرف نف جزم و قلب هست لم یکونه لذیر کفرو فعل مزاره رو تبدیل به ماضی منفی میکند و اللحاز اعرابی مجزوم لمّا نفر میکند تا زمان حال میگیم لمّا یذهب زید زید هنوز نرفت آیندهشو نف نکرد ممکن آینده برود اما لم نه لم بگی نف کرد لم چیکار کرد؟ لم یذهب زید زید نرفته است زید اما بگیم لمّا یذهب زید زید هنوز نرفته است تا زمان حال. این فرق لم با لما هست اللحاظ معنوی لحاظ اعرابی که هر روطا مجزون میکنند لم یعنی سر میگیم یعنی فعل مزاره مجزون با لم علامه تکیزه سکون زیدون فائلش لما چنین. علامه همون لم ولی همزه تقریر روش اومده تقریر یعنی استفهامی که جوابش بله هست الان نشرح لکه صدرک آیا برای تو سینت را گشاد نگردانیدیم بله جواب چه هست؟ بله هست اینو میگه تقریر خوب استف... استفانت تقریری و انکاری پس الما ما همزه روی لما اضافه میشه علم ما احسن الیک زیاد دوم طولانی کرده بحث رو لام امر همون لامی که شما در میزان میخونید که امر غائب و به قول اون درست میکنند سیقا های قائب لی اظربلی از ریبا لی چرا لی اذرب شده؟ لام امر لامه چست؟ ال حظ معنایی نگاه میکنید اگر برای پایین تر از خود باشد بش میگن لامه امر و اگر فراتر از خود اون موقع بش میگن لا دعا؟ لا نهی و دعا باز هم چونین هست لا تنصر لا ربنا لا تو نه، اینجا دیگه بشه نمیگن لای نه خدا رو نه کردن بلکه میگن لای دعا هست لا چه هست پس این لا هم جز ما دو تا لا داریم لای نافیه مجزوم نمیکنه کند لای ناهیه جز جازمه هست لا تو آخذ تو آخذ مجزوم هست علامت از سکون هست. این هایی که تا اینجا خوندیم فقط یک فیل رو مجزوم می و از اینجا بعد. یعنی این ما مهما از ما ایو متا اینا ایانا حیث ما کیس ما و ازا اینا دو تا فیل رو مجزوم می کنند. که اولی رو میگن گن فیل شرط و دومی رو میگن جواب و جزای شرط. اینا این به اتفاق نهوی ها این شرطیه این تذرب اذرب حرف هست مهما اختلاف هست که آیا اسم هست یا حرف این اختلاف رو در قطر هم آورده دکتر او استاد عبدالحمید گفته قول, قول ازم گفته قول صحیح همین هست که مهما اسم هست اذما گفته قول صحیح همین هست که حرف هست باقی منده اسم هستند مثال های رو آورده است فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره خب اینو ترکیب کنیم یعمل چرا مجزوم هست؟ به وسیل من به وسیل من همین منی که الان خوندیم همین منی که الان من شرط هست یعمل پس مجزوم علامت جزمش هست؟ سکون از فاعلش هویه است که به من برمیگردد یراهو چرا مجزوم شده؟ چون جواب و جزای شرده است در از یراه هست در از چه چون این ناقص دیگه ولی مجزوم شده علامت جزم هست فه حرف هست ایم ما تدعو فله الاسماء و تدعو اینجا مجزومه بوسیله این و علامت جزم هم حسفه نون هست فله جواب و جزا هست اینجا چون از اون جملاتی نیست که صلاحیت جواب و جزا رو داشته باشه روش فا اومده است که اینا در کتاب های بزرگتر مفصل بحث خواهند شد به همین اندازه در این بحث اکتفا میکنیم فقط شما نواسب و جوازم رو در اندازه کتاب اجرومیه یا اجرومیه یاد بگیرید نواسب و جوازم رو بر دو رو بودند اونایی که خودشون فی نفسیهی منصوب میکردند که چهار تا بودند و باقی مانده که ان بعد از اونا پنهان شد فعلا یاد بگیرید و شرطشون رو به چه شرطی اونها ان بعدشون دوتا که فاوام بودند شرط داشتن که ان بعدشون کنهان بشه چرپشون این بود که فای سببیه و واو مئیه در جواب نف یا طلب باشن و بعد از اومد اون اومدیم اومد رسیدیم به جوازن که جوازن 18 تا بودن 6 تا رو آورده بود که یک فعل رو مجزوم می و باقی مانده دو فعل را مجزوم می گردانیدند و پیروز باشید.